بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمين و صل الله علی سید و رسول الله و آله قیبین و طاهرین المعسونین و لانتو دارد و لانتو دارد مجمعین اللهم رفقنا جمیعای مشغلی ارحمنا به رحمتک یا ارحم الراحمین از شد که مرحوم صاحب وسائل در اینجا اووردن این روایاتی که در اینجا نعرم شده البته خود مرحوم صاحبه ها بسه مرحوم ابن تاووس نیستن که خیلی تحکیل بکن رونو جون لیکن صاحب وسایل بیشتر به اصطلاح ما اول گفتیم که ها روایات رو مرحوم سال وسائل در این باب 24 آبا از ابابایی اکتصد نهر کرده از کلیمی که تمامش هم در اتفاق روزه شیخ نیست. و در اباب آداب سفر هم دیروز اشتوان داره بزن باب بیست و باب چارده اول باب چارده هم آداب سفر در اول باب هج و ابابال کتاب هج جلده هشتومه از شاپ مرموهای ربانی در اونجا ایشون اونجا تحبیر رو تحریم که من صحبازه محقا ارز شد که در جزین غبایات هنوز هم از کافی هست که باز مرمون صاحبتاریم نیابردن من احتمال دارم که اون باب چارله و اونجا نیابردن نه در اونجا زهد کردم و نه در اینجا نیتا که ما بخونیم حاله بحث کافی رو تموم بکنم یه توضیحی راجب این روایت دیدود شمایه در این کتاب بهار 23 شماره چهار در وسائل بود که روایت ابن عبی عمر بود قال سوئل عن النجوم تن آل مای علمه ها الا احلو بیت من العرب و احلو بیت من الهن از این که این روایت محسل اما که این عجیبش که امبلا در کتاب فرج المهموم که نقل کردی یا فرج الحموم دارم و اهلو بیس من الهند اولاد و رسی ادریس علیه السلام این عجیبه این ذهی رو از کافی نهبه کرده شب شو کرده من اون سپروز در این نسخه کافی ما نیست فعلا. اما مشابهاتی داره این طور نیست که در مشابهاتش نباشه. این راجبی جبی بعدم اشون فرمده روی به روین و حال به اسنادی الاره ابن عبی عمر ان اصلی من اصلهی ان عبی الله. خلی سلام این ترویج اینه ظاهر نبادی این که ابن ابی عمر نبی ابی عبدالله سلام ابن ابی عمر از ابی عبدالله نقل نمی کنه یه شخص دیگه دارین که گورم درست نمیشه ما هم درست نشافتیم به نام ابن ابی عمر یا محمد بن ابیبه اون ابی عبدالله از نام سازه نه اصطلاح هست درست هم هست اما قطعاً این شخص نیست از او هم معلومات ندهد چون صاحب کتابم نیست نجاشه متعرس نشده او رو احوالشی ازش خبر نداره ما در روایات دیدیم نیست. او وقتی هر مقرومه سیدن ها از مجموعه کلماتش خیلی شناسی برمید من گلی بعضی بعد احادی توی مداد تحکیم میکنم چون این اگر تعمل بفرمایید، گفته رفت یه فرامن و با دیگری ما گاهی وقت اینطور میشه اخصاص رو اینجا نداره یه دوارد از ابن عبی عمر میکنن یک سند که هست مثلا فرسیون یک واسه از ما مستاده در یک سند دیگه دو واسه یا مثلا اینجا بدون واسه ابن ابی عمر ابن عبدالله علیه السلام اما در نسخه کلینی ابن ابی عمر هم جمی من اخبرم و ان عبی عبدالله. دو داد این هست اختلاف نسخ در کتاب ابن ابی عمر هست حالا علت اساسی چیه ما که نسخ روانه رو دیدیم درادور حکم میکنیم لیکن احتمالی که من میدنم یعنی من بحث رو اینجا بزن می‌کنم، چون آن در نظرش میداشت باشم بعدتی سرها روایت به اینها برخور میکنه که گاهیم با این مشکلات بورن شاید بشن حل اون مشکل رو احتمالی که من میدنم این است که مقروم نبی عمر که کتاب ها نوشته بود قبل از زندان این کتاب ها رو خوب کرده این کتاب ها سالم بودن حدود یک سال که زندان رفتن و از زندان در آمدند و کتاب ها مشوه شده بودن نسخه ها مشوه بود به اصطلاح باران خورده بود خواب خورده بود احتمال هست احتمال آقا یقین یعنی ندارم اده از این کتاب رو هم بعد از ایشون که علامه و علی اخبار داده شده، تحریص کرده اجازه رو بود. لذا حسن فرض شده در نسخه اصلی ابن عبی عمر دو تا اسم موده این نصحه بعدی شده هرز شده کلان حذف شده لذا احتمالا مثلا نصحه که در اختیار مرحومتها و این نصحه این بوده؟ یعنی این نصحه از شد شده که ابن عبی عمر بعد از زندان نرم کرده و اسالی حذف شده اون وقت ممکن است که ظاهر شما همیتون هست، چون از یک عباده در میدیم شاید مثلا بعد دو سه سال که از زمان زندان گذاشته یواش اسلام کرده توانسته با مراجعه به اصول به مسادر اصلی اسما رو پیدا بکنه از باید بعضی هم مبهم مونده شاید ادهه از کتاب هم این وقت اجازه داده در حقیقت مشکل سر نسخ کتاب نهبی امر نسخی که قبل از زندان بوده نصعی که بعد از زندان بوده، نصعی که بعد میشه سفر اصلاح بکنه. مثلا این نسخه کلمی که از این نسخه سومه، چون میگه انجمید مثاله همان اکبر رو. یه چه اصلاح کنه دوام میشاره نص اصلاح رو اما نسخه مریم بن سیموس، از اون نسخه بعد از زندانه. چون میگه ابن ابی عمر علی عبد الله، اغا ابن ابی عمر از رو کنه. این رو ما اعتیادی که قیاس ما وصل ذهنی الهی شما قعودها من اختوا و خیلی من اثر به قبول این، من. با این ترتیب به نظر من یک توجیهی شد بین که الان در کتب اصحاب ما موجوده. نه اینکه ببین اختلافه حل بر تسامح استجاوز بکنی. نه واقعا نسخه ایشان، اون نسخه که از زندان دار آمده، خود نسخه مشکل باشه. هر اگر به نتش بوده هر دو حل شده. بیشور هم به اصلاحش نشده این راجبی خب بردیه محفظش هم یه پیدا میکنه مثلا اینجا محفظش هم مشکل ولی شایدش اینه در متن کلی همین مقداره اما در محفظ مرحومه تو در محفظ کلینیه در کتاب کلینی که بیسته اولاد و وسیع ادریس علیه السلام این تو محفظ مرحومه کلینی نیامده توی محفظ کلینی که ما داری نمده ما. تو این راژه بید اون مثلا از که دیود شد جز همین روایتی که خونده شد روایتی خونده شد که بله راژه به قصه مشتری بود چون حالا راژه به نعوی اومد یکمی صحبت کردیم یکمی روایتی که خودش تخصص باشد و سرین تا از روی استفاده کرد اون صحبت هم خونده شد یه تعلیق راجب اون قصه مشتری و آمدن مشتری و کلیش خدمات شب از کلی همین که کل اصلا میگه ما این روات واقعا باید بگیم فقط رد علم میشه به اهلش بکنیم که اصلا واقعا سر در نمیاریم. بگذارید من خودم برنامه اصول و آگوشنایی حرکت برام حاجی فاضل از اولای معروف نشد بخراسان بوده معبودن و منبودن و تشیع خیلی معروفه. چون مثلا ما در اوایل عقائد... یه مقدار روایات داریم حالا قدر بیشون اصافه کرد که که هم هم این طبه اینه مرادش اتاق بگذاریم منتظر این خود بقیت الله خود توضیح ما سر رهنی حالا این ظاهرنی روایت مشتری به اصل مشتری که در کتاب کافی آمده بلد. در ایشان مرحومه مجلسی یک توجیه هم کرده، لعل المراد على تحضیل سهت الخبر ان الله تعالی جعل في حال الوقت لهوهم عیاد و علم و الى لعل لا ينافی ما من اجماع المسلمين على حیات عدم حیات الاجسام الفلکیه خب من اشون تصادفه با علمت تحضیل شونی راه بشا و اما انهو که اتصار سقیلا به سوات اول و درجه در رجال فیمکنن على البته این در علم جهید هم شده که اگر فضای مابینه الکترون و پروتون از بین داره مثلا ممکنه کوریزین به اندازه کتغال بشه با همین سنگینی همه حجمش هم بشه او علا اعدام به اول اجزاسته و اجزا الاصلیه علاقی بها دیگه باید همونجوره من احتمال میدم به جای این توجی ها همینطور که من از خیلی احتمالم این مقادبی که در زمان امام ساده شروع شد از هند و چین و مصر و از جایی عجیب نوکیو آمن خود این مطاله مشوه بوده هنوز علمی نبوده اون سطحی که آمازه نبوده یا ترجمه ها واضح نبوده یا گویا نبوده یا خود این کتاب ها که اون عالم تو هند جز کتاب های خرافات هند بوده توی چی جزه کتاب های خرافات بوده این که اجماع مسلمین است که افلاق زا حیات نیستن و این معنی و معنای اونها این در حقیقت بهتر رو مرحله سی اینجور شدن این احتمال بسیار قوی داره خودت خطا کنی احتمال بسیار قوی داره یه تفکرات خرافی از نوجون اوائل دین اسلام وارد شده می جمع این تفکرات داره. مثلا مشتری میشه رسات انسان بیاد یا اصلا مشتری رو داره حقیقت داره نفس داره ملک معکل داره ممکنه اون طبیعت این احتمال نهازه. ممکن اون تجسرم پیدا کرده از من از بکنم به جایی که دنبال این سند و امت و این یوختمل و یوختمل بینید به جایی نیرده ببینید شاید این تفکرات یک تفکراته چونه علم نجمان به لفت یک دورهی تلکت هایی مداره علمی بشه این در همون آلمه حنود هم که بوده هندیان بوده یا یونامی ها تفکرات و خرافی شو بوده این تفکرات و وخراهی تازه آمدی که اسلامی اسلامی ها نشینان دارن کردی رو، اصلاً تکل موذو متحمل نمیکنه. بعدش هم این حرفایی که خودش در ویدیو اینا رو نسبت به اعضای سران لاری می‌جویدند. نه از کل، گلی واقع یک مطلب رو مثل مطلب اولی که خوندی. یه دفعه می‌بینیم، یک امام نسبت به یک باز به یک سرگی به همون امام همون کم دزدی از آنها می‌نشست، و یک مطلب که این هفت اصولی صحیح مطلب یکی دو سند مختلف دو مطلب مختلف و اصنام این سا سردر خب همین مسئله مشتری رو که الان خوندیم دیدید برای شما که ببینید مرموم کلینی نقض نکردن قبل مرموم کلینی یه شخصی به نام سباهب نصر هینوی سباهب هیچی نمیشد آراد کلن نمی واسطه ایشون آمده ادعا کرده که در مجلسی حضرت رضا با علمای کلام و فلاسفه و منجمین ها جمع شدن و حضرت مسائل رو فرمودن مسائل عن الرضا مسائل الرضا ببینید نگشت دلیل لحوم مسائل الرضا مسائل الرضا اینو برای جو فهمیدن که خودش سوال کرده نه ظاهرا نیست اسم کتاب مسائل الرضا ظاهرا یعنی سوالاتی که اون منجمین و علمای طبیعی از حضرت رضا کردند، نجاشی اسم کتاب شخص رو برده ابن نصر هنگی این کتاب ادن نهلیه این کتاب ادن برسران ادعا شده این کتاب یعنی این شخص هنگی ادعا کرده که این کتاب رو ریان ابن شبیه نقل کرده که در این مجلس حاضر شد رعیان ابن شبیه دیگه شون اهل منبر و آدمان فکر کنم آقایی ایابا محرم منبر میرم خالبا اسمیشون دیگه آشنا این همونیست که ای آقاییان با کل تباه کرد فتر حسین و نهلی راز مفصلی از روزار داره راجع به جریان سید و که اول محرم قادم خونده این دادی معمول یا دادی مقتصر آزه من روشن نیست برای محم چون معمول که من میدونم مادرش که کنیز بود حالا معتصم تو ذهنم نیست در عبارات ففر اویون رحبا رضا بوده خال المعمول مثل با این که از دستگاه خلافت شیعه بوده و از مخلصین اگر رضا بوده و اگر از از بغداد بوده با از دستگاه خلافت بوده البته از مادر ایم. خوهرش به مثل کنید قسم هارم بوده از کنید حالان مادرش نه این خوهرش مثلا. خالصاً تیغه‌هارون بودی که حالا معلوم مثلا دایع معلوم بشه این برها دزی شیعث و بهرذوذا بوده در مر بوده بعدم آمده در قب در قوم مونده و قومیان ازشون ایشون تالیفی و قبولی کرده از ریانه نشد یکی دیگه داریم ریان ابن یکی از مشکلات اینه این ریان ابن سعد اینم از حزرزا نه حرکت کرده خدمت حزرزا و دینم قبا و نه ساکن حب بوده خیلی جهات با هم شبیه هستند اما این ربتی به دستای شلافت نداره ریان ابن سر مثلا کلا ربتی ریان ابن سر از اشاعره قومه که اشائره قومه هست کردن فلعظ یمنی هستن عرم هستن که ساکن قوم شدن از سال هشتر برده زبانه حجاجه نیفت و سقفی آبودن به قومه ساکر شدن این ریان ابن سر جز اشاعره قومه ربتی به اون ریان ابن شدید نداره اما مشترکات دارن هرزاشون خوب آمدن هرمونی هرزا حضر رزا یک مشترکاتی با هم دن گاید اسمشو با اشتباه شباه می شده مثلا بوده این گویی ابن سلز یکی بوده بشبیه دقیق در این مثلتی شد این راجع به این معلی اون وقت این سباه ابن نهست یا سباه ابن نهست اسمش هم دونم چیه هندی کتاب اینه بشنم مسائل یا رزا مسائل, رزا. مسائل رزا. ن فکر کرد که ایشون سال رزانه نیست. میگه ام رئیس نشده بی، دستور رو میگردم. ام رئیس نشده حالا که مات هسته یا دعای معمون؟ این رئیس نشده بی شدن دستور خاره بوده که مادری بوده که مادرم. نداره خاره بوده یا مادر خاره. یکی مادری مات هسته بوده یکی مادرم. به هر حال در کتاب نوشته خال مات هسته در کتاب از حدود اول نشون خال معمون آماده. و سقرم از ما بزرگوانی این نرم کرده که اده خدمت ما رسیدن این کتاب سواهب نصر از خرید تدوینش مثلا بعد تدارده دارده از این نرم ریانه بشه لیکن اصحاب ما از این کتاب نقل نکردن یعنی مثلا اولینشون مرحوم کلنی از این سواهب نصر اندی چیزی نقل نکردن حالا عرضی به و نروای از بحثی داره که این روز دیگه کاران دارست نیشه در هیچ کتابش از این نروا نکرده مرموم شیخ سوسی در هیچ کتابش از این نروا نکرده از این کتاب بلکه بالاتر از این اصلا مرموم شیخ سوسی در شرح حال, شرح حال سباه رونست رو نه در حجارش و نه در فهرستش من از کدرم مرموم آیه توستری ندیدم قبل از های توستیارای کسی بی خبر داره من ندیدم یکی از ابداعاتی که ایشان داره یه مقایسه بین محبوم شیخ و نجاشی این من جایی دیگه ندیدم یعنی از رجالی خیلی من تطبع رجال من رو هم من رجال دارم خیلی رحمونم کتاب رجال بیشتر سکر کردم تطبع رجال من خیلی قوی نیست لذا استقبار من حجد نیست اما یادم نمیاد در چیز کی دلیل عناقومه ایخستری ابن اولی کیش ایشونو بعد از جا مثلا آخوین کارو نگرد اون که بعد نشونن مرحوم آخستری این کارو کرده بعد اینکه ردیشونن متعرض این قسمت نشودن یا جوابن یا خلن یا <مت> اشکال ایشون خون خیلی داره مثلا اینجا ایشون داره که خب این غریان ابن صباحدنث هندی مرحوم نجاشی کتابش رو آورده خب بعد از اون بحث سوال کرده خب قائلان باید مرقوم شود در رجال و مناسد روايات هر نماز است مشی بود باید در فهرست به عنوان کتاب بودن این روز زیاد داره مرقوم تصير هر قومه ی گمیو نه حل بود اون و کتابیده وعده ذکر شیخ لهو که فهر فهرست و رجال ققلتون میشه همین که در اینجا میشه ققلتون این ققلتی از شیخ به متعرض ایشان نشده اصر کنم که این سادیگی سادیگی همیزه برای خیلی شیخ محصول نیزه اما اینکه که ایشان اسمش رو نبرده من عرف کردم شیخ رجالش رو در دو ممنون نوشته خب زفت بکنم یک کتب رجالی که قبلش شده، مثلا رجال برگی ایشانه باید رجال برگی داره رجال کشی دو رجالی که خودش استخراج کرده این یه حدیث خوده کتاب همیزه های خویه های خویه های خویه مثلا این استخراج رجال رو مرمومه علامه نداره علامه فقط همون مصادر قبلی هر خودش استخراج نکرده یا تک و تول که این از محمد رو نصد میترد اما شیخ استخراج داره یک شخصی در سنه داره واقعه شده اسمش عوضه یا در نمیاروه یا در رواهن کلان اسم شیفون مرموشه رواهن الامام در طبقه اصحابه مامون. رو. خب روید این سواهد هندی در کتاب های رجالی ما نیامده برگی نیامده رقایتشم روایت خب شیه قصوی ها در جا میدارده نبوده علم غیب این راجعه به بخش رجالش که چرا در رجال نیامده از کردم من نه از اشکالیشان نه جواب ما خیلی جاها جوابیشون که جواب مرمون توستری که قفلت نیست اولا این مسئله خب خیلی واضحه مرحوم شیخ قدس الله نفسه در کتور داره جالی نیست بردی کشی اسمین آها از طرف دیگه مرحوم شیخ قدس الله نفسه تو روایات یکی مثل کافی نداره اختیار شده اسمین آها تو روایات نگیده به چه اونست تو رجال گیاره تازه لفت اون مسائل من تو اون کرده باشه چون داره امرهیان ابن شبید احتمال داره که اصلا این مرادشت مسائل یعنی سوالاتی که علما کردن به امام جواب دادن نه سوالاتی که من کردم خودت هم میکنی ظاهر عبایت نجاشی این طوره. این یک مثلا اما چه در فهرس نگوزه از این نقطهش به نظر من. من روی شیخ هم که نکرد. یه مشکلی که آیت الله توستری توجه نکرد مرموم نجاشی توی بحث ریاندن شبیل میگه روان الرضا در کتاب نصر ابن سواهب نصر به ریان نسبت میده یعنی آدم نمیفرمه مؤلف کتاب ریان انسواهب نصفه یا سواهب ریانه خیلی عجیبه به جایی که مرومت تستری خوب بود این اشکال رو به نجاشی میکردن نه به شیخ شما عبارت دیگه چون نمیخوام خیلی بازه بحث بچن عبارت نجاشی رو در این دو عنوان نگاه ببرمایی انسان متحیل میشه که در حال این کتاب مال رعیان ابن شبیبه نمال سباهت نصر هنگیه رعیان ابن شبیب میشه نسیم سباهت نصر فقط همین مقدار که این آقا گفته از امام بزا سوال کردن جواب میدردن هیچ دیگه ما بیشن عاشقی نداریم هیچ جای عاشقی نداریم و کتاب هم هم کردن در مسادر مشهور از خواب ما مطرح نبوده اصلا این رواده ها مطرح نبوده مرحوم ابن تاووس این کتاب پیشش بوده من شکر بفتنایی جمع از کتاب تاووس کتاب های عجیب در اختارتونه که در اختارتون شیخونام نبوده در این کتاب به ها همین جده منجوهشیک هست صفحه 245 شماره 26 بابن نجوم ایشون عبارت تاووس وجد تو فی کتاب مسائل سباه ابن نصر الهندی لمولاما علی ابن موسر رضا آزبان نیستم میعبارد مرافیشان چیه اونی که من از کتاب نجا شدنم و از خود اعبارد سوالاتی که علمای کردن و حضرت رضا نهار کردن و رقصه سباه میکنه اما این احتمالا مثلا این جمعه خود سباه سوال کرده مثل روایت ابل عباس ابن نور به نوح نوشته اربال ای روایت این نسخه در اون زمان مرحوم بیتوسید تاموس داره شرحه هار اون نسخه رو که برش اعتماد کرده میده میگه نسخهی که برش اعتماد کردن نسخهی بوده که نسخه ابن نوح بوده ابن نوح سیرافی از بزرگان شنه از که اصطاد نجاشیست و اصولاً در ذهن مبارسون باشه در هر جا که نجاشی مطلبی را از ابن نوح در فلسفهش نقد میکنه یقین داشته باشه دیگه شیخ نرم میکنه چون شیخ از ابن نوح نرم میکنه چون نجاشی یک اساسیه به فقر داره که شیخ از آن نرم میکنه یکیش ابن نوحه همرا هم ابن نوح در بغضه بوده وقتی شیخ به بغداد رفت بعدش هم ابن نوح متهم شد که قائل به رؤیت و بعضی از مذاهب فاسده کلامیه است شیخ همشون ندیده. هم ایشون یک سالم بعد از روز شیخ به عراق رفت کرده اذا شیخ می‌گردش حدیث نه نگرد. روایت ابوالعباس ابن نوم استاد نجاشی و روایت ابی عبدالله محمد ابن احمد صفوانی این صفوانی بودن چون از نواها و از خاندان صفوانیذ مهران جماز نه صفوان میهیان. نه چون از اون خاندانه اینا صفوانی میگن. اینا هم از اجلای اصحاب یکی از کسانی که کتاب کافی رو نعر کرده یکی از مصحف معروف کافی هم نسخه صفوانی است. این شاید یه با توضیح. من اصل کتاب عتیق لنا دیگه ایشان بیش از این یک کتابی که گوهنه است روبما قد کار قد کتب فی حیاته ما در زمان خود ابن نوح خب این آخرش ابن وجاده میشه دیگه چون ابن نوح فکر میکنه اگه اشتباه نکره چون سید چار ساد و نوح وقتشه اصلاد مرحومه سیدم تاوو سیده 64 وقتشه چیزی بوده دوی سال فاصله دارن در حال به جاده بودنش خاریزه بکن به اصناد متصلفی انر ریانه نصر احتمالا یه نسخه از کتاب سواه پیشیشون بوده از آن کسی الان میتونه عبارت ریانه نشبیل از کامپیوتر بخونه شاید همین نسخه در خیلالیشون بوده کتاب ریانه نشبیل نه ریانه نشبیل عبارت اگر کسی کامپیوترش هست از نجاشی ریان ابن شعیب رو اگر زحمت نشه کسی بخونه نمیگی حالا بعدو خیلی والا برادر اون وقت این به اسناد متصلفی فيه عن ریان ابن شعب این نسخه یک مقدار اشتباه داشته چون اون ریان ابن شعیبه به تصریح نجاشی بله مرحوم نجاشی تو ریان ابن میاد وقتی تغییرش مرمو یه میگه وقع فیدو از نسخ ریان ابن یعنی این اشکال بین ریان ابن تو بوده اون زمان در ابن شبید این خال رو مؤسسه بس خال مهمون امید مسائل سباهل این هست سباهل این هست که میاد بگید از ریانه نوشبیه سر به شیخ احتمالاً این بوده میبینیدونسی این کتاب مال سباهل نزده اون ریانه نوشبیه این اشکال به مرحوم نجاشی وارده نبشه شیخ نجاشی خوب بود به تحقیل میبرونی به این کتاب مال کلوری گردید مال ریانه نشبیه به سرست یوابه ثوابت نصحین یه مشهور الحاله ببین رو رواکیو اصلا روا بود حافظ این که احتمال میدن این همون نسخه این وصی بوده که دریافت نکرشی عموچه در اون نسخه بریان نشیب نسخه این ابن همین یک عباس عباس میگه ما نوشته به این به بابت استناد احتمال هم هستن نجاشی کنین نجاشیات رو حاضرن اون اسناد نجاشی در حاشه کتابشون بنویسن پیدا کردن اسناد الان نیست دیگه ما در کتاب اون تابوس نیست بخویدا قال ببینید این حجاته این اشتباه بوده باید می‌شد ان علی عبدالله سخبانی. اینجا حالا نوشته رواه تعبل عباس و علی عبدالله این هم و خراب شده ان ابي عبد الله السفواني درستش هم هر کسی در تو استاد شاگردی کنه نیست و نه نمیخوره بفرمایید والله این اسناد متصل همونه اونجا هم خرابی داره محمد بن احمد از ابو جعفر نمیخوره حالا دیگه بارا با باید بحث نشید این, من این برای من بخواب این ارزو هم براتون احتمالاً یک که هندی مجول هایی در خراسان ها بروید دردن به هند اصلا از خواب ما از او خبر نداشته و احتمالاً ابن نوه گفته رعیان از او کرده ما زیفیلی گفته نه او از ریان نهر روشن شد که ابه ها میدرد کار موجود بوده و لذا از خبر احتمالاً اینها یه مقدار معلوماتی بوده که در هند بوده در اونجا هم خودش بوده. نه حالا اونجا هم بوده گفت تو آلمه خودش هم خیلی مال نبوده اما آلمه از اولمه هم خیلی درست حسابی نبوده اینها به این صورت یک انسان مشغول حال هندی بدون اینکه در حوزه های ما بیا فرسانسا به مر بوده دعا کرده بشه بوده بعد در مسته خبری هم ازشید جد وحیانه کلام به ما خبر میده که به قوم آمده برد چون اینجا اینجور داره همه ریال نصر که از کلم شبیه باشه به گفته نجاشی چون همین نصر دارن به احتمال نجاشی بوده این زرافت‌های های نصر خیلی مهمه مثلا فرصه همه مسال سباه رو چون بعضا همونم گفتن که از به کتاب از اینهای کلبه کنسن که نوشته چیزی خب اینشون مسال سباه رو داره اما این تفاصیلی رو که من از اصلا نداره خب کارش کار کار اینه این کار مهاس کار اون یهودی این کار راه انجام بده چیزی که من گفتم نکات فنی چیزی باشه مثلا به شعل در نیمه در فنوس که استخراج بده برای براتون روشن شد مثلا در اینجا غلطهاش گرفته شد ابهام‌هاش برداشته شد یه غلط دیگه داره ریانن سرد داره این درست شد این که کتاب بال سباحد مرتیا یا کتاب مال ریانن شبیه این روشن شد این اعتراضاتی که به مثل مثلا اینا وارد میشه که و ذکر اجتماع علماء به حضرت المهن اینجا امزارشه رئیان مصر و ظهور همهن اجتماع علماء همون علماء پیزیک و شیمی و نام هم مرادشه و ظهور حجتی علیه السلام علی جمین علماء و حضور سباهب نصر هندی اند مولان رضا اینجا تأثیرش این که خود سبا صباح خورسید سباهب نصر هندی که از ما ن اما علاوه این کتاب ثوابل ثوابل نصیه اباضی ثوابل نصیه نزد نجاشی هند با اولاد هر رضا و سوالی مسائل كثير منها ها سوال و علم نجوم فقال علیه السلام این ابان التاووس ما هذا هو علم فی اصل صحیح ذکر و ان عن... بلی تعبیر ذکر مثل و... کتاب سن رشد التنجوم تاریخ نجوم ذکر ان هم برای من تکلم به نجوم ادریس ذکر روشن شد درست؟ اصول اول من تکلمه سن نجوم ادریس اون وقت توی کافی که در افتداره ابن تاموسوده توی نجوم داره که اهل بیت من هند، اولاد وسیع ادریس این اولاد وسیع ادریس نسخه کافیه رو با نیزنه یعنی واضح شد که یک فرهنگ همی این مطلب رو جمعی رو کرده که حتی اون اهل بیت هم که در هند صد سواهی نثار گفتن ان هم بیتن خود اهل بیت که در هند هستن از, و... از وسی از اولاد ادریس هستند از پیغمبر و بقاش این علات اون ای کافی ما نیست یعنی به نظر من کسی که با این اصطلاحات خارجی کاملا واضحه که یک تفکر هندی مشعل در اینجا تخالف کرده حالا عادت شمبر رو بعدش هم برگشته توسط ریانه نشبید این مطلب تو قوم گفته شده نکنه اینو را قبول کرده نه مرحوم شیخ صدور این ما هم این یحیبن زکریوی من هم به کل مشبوره نمیشتیم از توسط این انسان مجبوره ها در اینان یحیبن زکریوی لولویه از ریانه نشبید بخواه این آره انسان احساس میکنه این من اینجا تأکید میکنم من مخواه بست من میخوام برای شما عرض که برای شناخت کیفیت روایات و چیشون در این روایات لخواست سراختایی عبارات غیر منصوب آردن اون سواهب نسر رو بفرمید دبینید میگه سواهب نسر لبو... یعنی هیچ شدیشی نمیشون سه مسائل خب این استاد منون شیخ توسی این نهاشر نها ابن عبدون استاد منون شیخ توسی شیخ توسی ازشان نعمتون من احتمال میدم شیخ توسی از ابن... از این نسخه ابنونو نقل و کردشون درک نکنی شیخ توسی ابهام برش کل داشته که اصلا این رساله اصالت داره یا نداره بفنده قفلت نید قفلت نداره بفنده درد درد درد تو <تصفيق> <میشن سمیرو> که قشری این همون احمد المحمل که فخوانی داشت شرح میکنه ابو جعفر. این اصلا نمیشه میکنه. اصلا از عجایبی که اسمش مارکو تو ماجد که تو خودو اربا اسمش مارکو تا اسمش مارکو <میشن> تا اسمش مارکو. والله اصلا نمیحسید که احمد محمد بن که نمیشناسید با دوره‌ای که نمیشناسید اونجا رعایت اینکه که ریالون سطح اشتباهه والله اكثر مضمون اصلا درنده که مثلا اینطوره ذکر مسائل صبا یعنی صبا گفته که امام اینجور جواب داد حالا امام گفته این عبارت اینه که خود صبا سوال کرد. فقال علیه السلام ذکر و ان ابن فی تابو مولای ذکر و ان ابله من شکل نزوق الهیش و کام زل قرنین بها ماهرند و اصل ها در علم اندلا عزوجاست مرحوم سید تابو با اعتماد به این روایت بعض اثبات که این درست بی خود در مباد تعلیمی حرام است ما گفتم ول تعلمش حرام بحثیه با این روایت اینجوری اثبات و حکم کردن خیلی مشکل تر بعد در دیوان إن الله بعث النجم الذي از امام صادق داشتیم یجاد مامزام. في صوره این کتابی شدن في فلم اینجا مورد عجم بلند ها ایرانی آورشه. باشه نشن نتونستن به در هم فعلم رجلن من ها. این اینه بیروز خوندیم از خافی از روزت خالقه بگرد خالقه علم به ها و قومون هو علم من علوم الانبیار این تعاویر به من تعجب می کنم چیز اعتراض به شهر کسایی نکنم و واضح این تعاویر خصوصی سبیهی لأسباب شرط ها از از دقیق من ها و حق دلکست حالا آخر مولانا علی بن که خود مخفی سریم تابوس و ذکر و خودشو رو و قلو حاده سلام این حجت حجت مال و قلو حجت و قلو علی سلام ذکر او یوقار آخریش میخورد. او اندک مخالفین ولی آمن یکو نخبه ها بالکلام. و و تا را که نقول و تا را نقول هم رسول الله واقعا هر به این رو خواهد عبی اپول که ذکر و همه اصله ها ولی از زمین تا آتمانه. به هر حال من فکر میکنم با این تحریمی که خدمتون ها از کردم فکر میکنم انشاءالله تعالی مقدر تا حد زیادی واضح کده باشه که خرابی ها از کجا درست شدر و چه جور پ نه اصلا ما ها میگه شما برگردیم به هستش این مشبهشش موجهه نم از روایات چون من دیدم مرحوم کلیه مرحوم صاحب وسائل بقیه روایات کلیه رو نیورده هست مرحوم کلیه میگه از این چهارت روایات در روزه چه چه رو داره و مرحوم صاحب بهار اینا رو من اینا رو از بهار بخونم برای کتیل بست در شماره بیست و بهار در بهار این باب شمال 12 نمیشته کافی؟ علی ابن ابراهی من عدی عنی ابن محبوب عن مالک ابن عکیه سنت خوبه و عجیبه نمیم باید در روزه کافی رو بده و, و واضح همه هست که کتاب ابن محبوبه مشکلی هم بلاد تاریخی نداره قال سال فرسلمان خالید افتر شد دستش بریده شد از بزرگان کوفه بوده قاری قران هم بوده. از قرائ معروف معزوز و وریث قال سرز ابو عبد الله علیه السلام ان الحر والبرد می مایه این گرما و سرمای تابستان انسان چیه قال یا ابو ایوب ان المريخ کوکبون حار و زهره کوکبون بارد و شروع میکنه امام راجل به مریخ و بارد و زهره سرد این, این نزدیک میشه اون نزدیک میشه این میاد بالا اون میره فا هرچی که این گرمه میاد که این نزبیت میشه این سرد زمین گرم میشه حسین سرده میاد وقتیه چره این چونی بله بعد مرموم مجلسی چون خودشون نجوم خوندن بیان اشکل علن نازر علن نازرین اشکل چاکل غلط اشکل اشکل به متحدی لازم متحدی. اشکل علن نازرین بیابر خبر حلو منجه از این حرکت زهل و این نزیخ خواست این خیلی متوافقت و این حالا ایشون از با تفاوت رفتار رفته با همون نجوم ردی ببینید خود مجدیسی و نجوم خودش رفته باز این روایت به نظر هم واسهمون هندی میونیاه که کسی اصلش گرفته شده و باز از اون نجوم مشوحه اوناست نه نجوم درستشون اصولا در این روایت این هر و برد رو به زحل و مشتری نسبت داده شده کوکب زحل و مریخ و به این تصور که اگر هر رو بر در روی کره زمین هست یک نراخته اصلا این روایت با غیر از موسیٰ آفقته نموت خاله کار به حرفای مروم مجلسیت نبریم قطعاً بر اثر کورعبیت زمین نصفش گرم نصف سرده این در بالا وقت قصوش با نصف شمالی تابستانه نصفش جنونی زمستانه. این که دراجب زمینی اصلا این تصور او تصور این است که تصابر اگر افراد رو نیمه خطو شمالی و این در همون حالی که نیمه خطو شمالی گرمه نیمه خطو جنوبی سرده همون حالی نمیشه این با رابطه مریخ و با رابطه زهر حل شهر چون اون زهر و مریخ رابطه با کل کره زمینه نه با نیمه شمالی رابطه زمین با خرشی کل کره زمینه نه نسبش این اشتباه اصلا اصل این مدل روی یه نجوم مشبه بوده مرمون مجلسی هم یک کار درستش بکنیم اون نجومی که در زمان خودش سریعی می تمام مصرف هم غیر درسته یعنی این نیست که وقتی این خیال اگه زنی سر شد همه یه زنی سر بده گه یه گربه حتی مجلسی هم که در اون در در درستش بکنه باز با همون درستش, خودش درستش کرده تا هم تام تیم خود عرض میکنه باز با اون شجرزای جلوش شرطه نکند نه که ت... ایشان درست نه اصل خبر هر اشکال داره اصل کلام خدمتون یه تصوری بوده که کره زمین رو مسطح می‌دونسان به حدی به حدی که برای شب و روز هم مسطح می‌دونسان یکی جناب صاحب نظر نشونشون ترجمه می‌کنم صاحب نظر میکنه تو بحث اهلال نگاه کردن که محرم زن. میگه زمین مسطحه کروی نیست و من یک رساله خواهد از آیات داره و آیات این مرا در میان و میگه اگر جای خوشی طول کرد همه زمین روزه فروبم کرد همه زمین شده چون عبادش اینجوریه همه زمین روزه همه زمین شده ما دیگه شد داره همه زمین دیده میشه. دیده هم نشون برای همه زمین تصور ایشان خب ایشان این تصور اصلش اینه این روشن شد استش یک تصوری بر متصره این تکول روی زمینو قدما یونانی ها قائل بودن حالا یک ایده خطی از هندیا بوده که یا به هندیا که یونانی کوردی قبول نکردن و این تصور کردن که اگر زمین سرده یا همه جا سرده اگر بهاره همه جا بهاره اگر زمستانه همه جا زمستانه و حق اون علم رو اون زبانای فاسد رو با یه تحلیل غذایی برای خودشون مثلا مریخ مثلا چون این گرمه زهر سرده یا مریخ بزن این از میشه میشه یا زهر بزن این نزدیک میشه میشه زوسو تا آخرش حدود نیم تپه است من دیگه خدا اون از مریخ مغناطیسی خود بکنه که واقعا حرکت‌هاشون در این بالون جون مجلسی تصور نفرندن که این جور روایات درست جون جو و جنبال اون و વિશ્વાસ بگذارید یا واقعا یک کسی در مجلس امام بوده امام به مقدار عقل اون صحبت کرده اگه سر به راه نبوده خود کد اینه که من اولی این خبره این روایت رو در به اصطلاح کتاب روزن بوده که نشون میده مورد اعتماد ایشان نیست هر دو برای درس و صلی الله علیه و آله